زن، شوهر و آشق ولچانینوف به خواب سنگینی فرو رفت و درست ساعت نیم بیدار شد بلند شد روی تخت خوابش نشست و درباره مرگ آن زن به فکر فرو رفت احساس منقلب ای که شب گذشته از خبر ناگهانی این مرگ به او دست داده بود آشفتگی و درد و رنج در او باقی گذارده بود این آشفتگی و این درد و رنج با فکر عجیبی که شب پیش در حضور پاول پاولویچ در او ایجاد شده بود موقتاً از یادش رفته بود اما امروز در لحظه بیداریش آنچه که نه سال پیش واقع شده بود ناگهان با سراحت عجیبی در نظرش ظاهر شد او این زن یعنی مرحوم ناتالیا وسیلیونا همسر این ترسوتسکی را باطنن دوست می داشت به هنگامی که دعوای ارس او را به شهر تک بود یک سال تمام عاشق این زن شده بود این دعوا چنان اقامت طولانی را لازم نداشت و تنها علت آن همین دلبستگی بود این دلبستگی و این عشق چنان وجودش را مسخر ساخته بود که می شود گفت برده ناتالیا وسیری افنا شده بود اگر این زن تنها براوردن هوس ناچیزی را از او درخواست می کرد حاضر بود احمقانه ترین و عجیب ترین کارها را انجام دهد. نه قبل و نه بعد هرگز برایش چنین پیش آمدی نکرد. در آخر سال وقتی که جداییشان حتمی شد، فرارسیدن این عاقبت مقدر ولچانینوف را در چنان ناامیدی شدیدی فرو برد که گرچه مدت جدایی کوتاه به نظر میآمد، او به ناتالیا وسیلیونا پیشنهاد کرد که شوهرش را ترک کند و به همه چیز پشت پا بزند و برای عبد با او به خارج فرار کند تنها تمسخرها و ثبات تزرزل ناپذیر این زن که در ابتدا شاید با شوخی یا برای اینکه از تکرارش کسل میشد کاملا این پیشنهاد را تایید می کرد او را مجبور کرد از این کار چشم بشوید و به تنهایی عزیمت کند و بعدها هنوز دو ماه نگذشته بود که وقتی در پترزبورگ این سوال را که هرگز نتوانست جوابی به آن بدهد از خود میکرد آیا راستی این زن را دوست میداشتم؟ یا همه اینها سحر و جادوی بیش نبوده؟ این سوال را هرگز از سبک مغزی یا به علت طرح عشق تازی از خود نمیکرد در طول مدت دو ماهی که در پترزبورگ بود در جذبه دائمی عجیبی فرو رفته بود و به هیچ زنی توجه نداشت با وجود اینکه فوراً روابط سابقش را با مردم برقرار کرده بود و این موقعیت را داشت که تواند با صدها نفر از آنها خود را سرگرم کند. وانگهی با وجود همه دودلی هایی که در او ایجاد شده بود کاملا میدانست که اگر گزارش به شهر طبی افتد دوباره زیر سلطه زیبایی مسخره کننده این زن جوان خواهد تا پنج سال بعد هم این عقیده را داشت. اما پنج سال بعد دیگر این مطلب را با قیز و نفرت اقرار می کرد و حتی با بغز به این زن میاندیشید. از آن یک سالی که در شهر ته بود شرمنده بود. ولیچانی پیش خودش امکان وجود چنین عشق ابلهانه ای را نمی توانست باور کند. تمام خاطراتی که به این عشق پیوستگی داشت مواجبات شرمندگی را فراهم می کرد و پشیمانی آزارش میداد درست است که چند سال بعد کمی آرام یافت و باز هم کوشش کرد همه چیز را فراموش کند و تقریبا هم به این مقصود رسید وکنون پس از گذشتن نه سال همه این وقایع با خبر مرگ ناتالیا وسیلیونا به وضع عجیب و ناگهانی حیات دوباره یافته بود اکنون که بر روی تخت خوابش نشسته بود، موجی از افکار در هم و برهم به مغزش حجوم می آورد. در میان تمام این افکار فقط یک چیز را درک می کرد و آن این بود که با وجود احساس منقلب ای که شب گذشته از شنیدن خبر مرگ به او دست داده بود اما واقعی مرگ کاملا او را آسود خاطر ساخته بود. از خودش می پرسید، آیا راست است که حتی بر مرگ او افسوس نمی خورم؟ واضح بود که اکنون دیگر بغض و نفرتی از او در دل نداشت میتوانست با بیطرفی و شعور کامل درباره آن زن قضاوت کند عقیدهی که در این مدت نه سال برایش حاصل شده بود این بود که ناتالیا وسیلیونا در شمار عادی ترین و معمولی ترین زنهای ولایتی زنهای اجتماع مترقی ولایتی قرار داشت کی میداند؟ شاید راستی همینطور بود؟ و آیا من به تنهایی همه این خیال های واهی را برای خود نیافتم؟ و با وجود این همیشه تصور میکرد که این عقیده درست نیست و حالا هم از آن عشق احساسی در دل داشت گرچه وقای خلاف آن را ثابت میکرد این باگ نیز با آن زن روابط چندین ساله پیدا کرده بود و شاید هم تحت سلطه زیبایی او واقع شده بود راستش باگ به بهترین اجتماعات بوجوازی پترزبورگ وابسته بود. و چون مرد کاملاً بی بود، ولچانی نفت دربارش این طور قضاوت می کرد. نمی زندگانی خود را جز در پترزبورگ یعنی بهترین ورق برنده زندگیش بگذراند و فقط به خاطر این زن پنج سال عمر خود را در شهر ته از دست داده بود. و بعد هم شاید فقط به این علت به پترزبورگ برگشته بود که او را هم مثل کفش مستعمل از کار افتاده ای به دور انداخته بودند. پس لابد در این زن چیزی عجیب، هنری برای جلب کردن و اسیر ساختن و مسلط شدن وجود داشت. با وجود این به نظر نمی آمد که در او چیزی برای جلب کردن و مسلط شدن وجود داشته باشد. حتی آنقدرها زیبا نبود، شاید هیچ چیز از زیبایی نداشت. در آن وقت که ورچانی به او برخورده بود، بیست سال داشت. چهرش زیبا نبود، اما گاهی با روح می شد و در آن هنگام بی اندازه دل فریب می گردید. چشمانی ناخوشایند بود. نگاهش خشونت بی ای داشت، بسیار لاغر بود. تربیتش ناقص بود، روح نافذی داشت، اما تقریبا همیشه گیرندگی نداشت. رفتارش مثل رفتار یک زن ولایتی وابسته به اجتماعی مترقی بود اما پر از حالت بود لطیفی داشت که به خصوص در طرز لباس پوشیدنش خود نمایی می کرد سرشتی مسمم و سلطامیز داشت با او درباره هیچ موضوعی نمی شد نیمه توافقی حاصل کرد یا توافق کامل یا انکار صرف در کارهای دشوار صبات و پافشاریش تعجب آور بود و بسیار بلند همت بود و با وجود این بی انصافی بی حدی داشت. مشاجره با این زن ممکن نبود. برای او استدلال تا چهارتا هیچ وقت معنی و مفهومی نداشت. هرگز در هیچ چیز خودش را بی انصاف و مقصر نمی دانست. بی های دائمی و متعدد او نسبت به شوهرش، به هیچ وجه وجدانش را شفته نمی کرد او را مثل دوشیزه خلستی یافته بود و خودش گمان می کرد حقیقتا همان مادر خداست است. ناتالیا در هر یک از اعمالش مطلقا این اعتقاد را داشت نسبت به دلدادگانش تا آن روز که از آنها زده می شد وفادار می ماند دوست می داشت آنها را آزار دهد اما بلد هم بود چجور از آنها دلجویی کند طبعی خشن، شیفته و احساساتی داشت از هرزگی متنفر بود و با تعصب غیر قابل تصوری آن را محکوم می کرد. ولی خودش هرزه بود اما هیچ چیز نمی توانست او را وادار کند که به هرزگی های خاص خود اقرار کند ولچنینوف هنگامی که هنوز در شهر ته بود اینطور فکر می کرد. ولی مسلما از این موضوع اطلاع است و ما میگوییم که او خودش هم در فسادکاری های آن زن سهیم بود می گفت این هزار آن زنهایی است که به نظر می برای بی وفا بودن زاییده شدهاند. اینگونه این گونه زن قبل از ازدواج به این راه نمی افتند طبیعتشان به طور کلی تقاضا میکند که برای این کار ازدواج کنند شوهرشان اولین عاشق آن اما فقط بعد از, از ازدواج هیچ کس به این آسانی و به این مهارت ازدواج نمی کند و شوهر همیشه مسئولیت و جور اولین عاشق را به گردن میگیرد. بعد همه چیز تا حد امکان با صداقت میگذرد. این زنها همه چیز را کاملا حق خود تصور میکنند و طبیعتا کاملا خودشان را پاک و می میدانند. ولچنیوف نه تنها معتقد بود که این دسته از زنها وجود دارند بلکه عقیده داشت یک دسته شوهرانی هم که طرف متقابل آنها هستند یافت میشوند شوند که تنها مأموریتشان این است که با اینجور زنها به سر برند. به عبارت دیگر به نظر او وظیفه اساسی اینطور مردها این است که همیشه شوهر باشند. یا واضحتر بگوییم در همه زندگیشان فقط شوهر باشند نه هیچ چیز دیگر. چون این مردی متولد می شود و بزرگ می شود تا یک بار ازدواج کند و بعد زمیمه و تابع زنش گردد حتی اگر چه طبیعتی مخصوص به خود داشته باشد صفت مشخص این چونین شوهری آن است که درست مثل یک زینت رسمی به کار برود همانطور طور که خورشید نمیتواند ندرخشد این شوهر هم نمیتواند مثل گاو پیشانی سفید نباشد و تازه هم نه تنها هرگز این موضوع را نمیداند بلکه طبیعتا محال است که آن را در یابد به طور مسلم به وجود این دو دسته اعتقاد داشت. و مطمئن بود که پاول پاولویچ شهر ته مظهر یکی از این دو دسته است پاول پاولویچ شب گذشته مسلمان آن کسی نبود که در شهر ته باوی آشنا شده بود به وضعی باور نکردنی تغییر کرده بود اما میدانست که او نمیتواند طرز دیگری باشد و همه اینها کاملاً طبیعی بود آقای ترسوتسکی وقتی که زنش زنده بود می توانست همانطور که ویلچانینوف او را شناخته بود باشد. اما حالا همان آدم درست مثل جزئی بود که از کل خود جدا و آزاد شده باشد و در این حالت موجود تعجب آوری شده بود که به هیچ چیز شباهت نداشت. و این است خاطرهی ای که ویلچانینوف از پاول پاولویچ نگه داشته بود و اکنون به یاد می آورد. حتما در شهر ته پاول پاولویچ چیز دیگری جز یک شوهر نبود. اگر غیر از شوهر بودن کارمند هم بود می شود گفت فقط به این جهت بود که کارهای خارجیش یکی از تکالیف ازدواجش به شمار می رفت. هرچند که طبیعتا کارمندی جدی بود ولی فقط برای خاطر زنش و موقعیت اجتماعی آن زن در شهر ت، انجام وظیفه می کرد. در آن وقت سی و پنج سال داشت و صاحب ثروت قابل ای بود. در کارش لیاقت خارق نشان نمیداد، اما نشانه عدم لیاقت هم در او پیدا نبود با طبقات بالای اجتماع رفت آمد داشت و شهرت داشت که در زندگی دست و دلباز است در این شهر از ناتالیا وسیلیووناک کاملا قدردانی میشد. ناتالیا وسیلیوونا برای این مطلب همیت زیادی قائل نبود و آن را مثل اینکه از مردم طلب دارد تلقی کرد. اما کاملا مورد قبول همه بود و چنان به خوبی پاول پاولویچ را تربیت کرده بود که صاحب رفتاری بسیار عالی شده بود و می توانست حتی در پذیرایی رسمی شخصیت های برجسته دولتی هم شرکت جوید. شاید مرد باهوشی بود. به نظر ورچانینوف اینطور می آمد. اما چون ناتالیا وسیلیوونا دوست نمی داشت شوهرش زیاد حرف بزند، قضاوت کردن در این مورد دشوار بود. شاید صفات طبیعی زیادی از بد یا خوب دارا بود اما می شود گفت که صفات خوبش با روپوشی پوشانیده شده بود و صفات بدش نیز تقریبا خفه شده بود مثلا ولچانینوف به خاطر می آورد که آقای ترساتسکی گاهی میل می‌کرد اطرافیانش را مسخره کند اما زنش به سختی او را از این کار باز می‌داشت همچنین دوست می داشت حکایت حکایت‌های نقل کند اما قاعدتا در این مورد هم تحت مراقبت بود فقط به او اجازه داده شده بود که مطالبی کوتاه و بیمعنی بر زبان براند نسبت به یک دسته از رفقایش که در خارج از منزل با آنها ملاقات میکرد تمایلی در خود حس می و حتی دوست داشت که با آنها مشروب بخورد اما این آخرین تمایل را هم از او گرفته بودند و با همه اینها وقتی کسی از زواهر غذا یا قضاوت میکرد هیچ نمی توانست بگوید که او زیر نفوز زنش زندگی می کند. ناتالیا وسیلی همسری مطیع به نظر می آمد و خودش شاید یقین هم داشت که این صفت را داراست. پاول پاولویچ ناتالیا را شاید دیوانوار دوست می داشت اما شاید هم به علت تدابیری که به وسیله زنش اتخاذ شده بود این مطلب را هیچکس کس نمی توانست حدس بزند. ولچانینوف، در مدت اقامتش در شهر ته بارها از خودش پرسیده بود آیا این شوهر حتی به اندازه یک خردل روابطی را که او با زنش دارد حدس میزند یا نه؟ چندین بار جدا این موضوع را از ناتالیا واسیلیونا پرسیده بود و او همیشه با یک نوع اندوه آمیخته به خشم جواب میداد شوهرم هیچ چیز نمیداند و هرگز هم نمیتواند بداند و اصلا این کارها کار او نیست. صفت برجسته دیگری که این زن را از دیگران ممتاز می کرد، این بود که او هرگز پاول پاولویچ را ریشخن نمی و شوهر خود را در هر حالتی که بود، نه از خرامیز و نه بسیار بد می و اگر کسی جرأت می کرد نسبت به شوهرش بی احترامی کند، با حرارت از او پشتیبانی می چون بچه نداشت، طبیعتاً زن بسیار خوشگذرانی شده بود، ولی از وجدان خود نیز پیروی می کرد خوشی های دنیا هرگز او را کاملا در خود فرو می بردند و او بسیار علاقه داشت که در خانه خیش به خانهداری و کارهای زنانه بپردازد. دیشب پاول پاولویچ از مطالعه هنگام شب خودشان در شهر یاد کرده بود. در حقیقت این ولچانینوف بود که چیزی میخواند و گاهی هم پاول پاولویچ در این کار شرکت میکرد و با وجود تعجب شدید ولچانینوف خیلی هم خوب و بلند می توانست بخواند. ناتالیا واسیفنا با آرامشی که همیشه یکسان بود به مطالبی که او میخوااند گوش میداد و گلدوزی میکرد یا چیز می دوخت. داستان دیکنز و خلاصه مقالات مجله های روسی و گاهی هم چیزهای جدی را می ناتالیا واسیفنا برای تربیت و فهم ولچنیوف ارزش زیادی قائل بود ولی از آن دم نمیزد. این خصوصیت مرتب و شایسته‌ای بود که بحث راجب آن مناسبتی نداشت و به طور کلی نسبت به هر چیزی که علمی و ادبی بود علاقه نشان نمیداد. مثل همه چیزهایی که هرچند شاید مفید هم بودند ولی او توجهی به آنها نداشت. اما پاول پاولویچ گاهی حرارتی نشان می‌داد. در همان دورانی که عشق ولچنینوف به بلندترین مرتبه خود رسیده بود و تقریبا به دیوانگی نزدیک شده بود، ناگهان رشته این آمیزش از هم گسیخت. او را ناگهان به سادگی از خود راندند. هرچند که همه چیز به قسمی مرتب شده بود که موقع رفتن درک نکرد که دارند او را مثل کفش مستعمل از کار افتادهی ترد می کنند. شش هفته پیش از عظیمتش سر و کله افسر طوب جوانی که تازه درجه گرفته بود در شهر تپدی شد و با ترسوتسکی ها شروع به رفت آمد کرد و آنها به جای سه نفر چهار نفر شدند. ناتالیا وسیلیفنا مرد جوان را با خوشرویی و حسن نیت میپذیرفت اما با او مثل بچه ای رفتار میکرد. ولچنیوف هیچ تردیدی به خود راه نمیداد چون در آن هنگام خیال دیگری در سر داشت. زیرا ناگهان در همان ایام به او پیشنهاد شده بود که باید برو. یکی از صد دلیلی که ناتالیا وسیلی برای موجه ساختن این عظیمت اجباری به آن توسل می این بود که گمان می‌کرد آبستن است و طبیعتا به همین دلیل ولچانینوف نوف می بایست خودش را ناگهان لاعقد برای سه یا چهار ماه از انظار مخفی کند تا اینکه پس از نه ماه حتی اگر افتراهای هم زده شود شوهرش به سختی بتواند شکی به خود راه دهد در این استدلال به قدر کافی موشکافی شده بود اما ولچانینوف با حرارت به او پیشنهاد کرد که با هم به پاریس یا به آمریکا فرار کنند اما بالاخره خود او مجبور شد به تنهایی به پترزبورگ عزیمت کند و مطمئن بود که این جدایی فقط برای زمان کوتاهی است یعنی برای سه ماه یا کمی بیشتر و الا با همه دلایل و براهینی که ناتالیا واسیلیوونا می آورد ولچنینوف محال بود از وی جدا شود درست دو ماه بعد در پترزبورگ کاغذی از ناتالیا وسیلیف نادر یافت کرد که در آن از ولچانینوف درخواست می هرگز بر نگردد زیرا حالا کس دیگری را دوست می داشت اما در مورد حاملیگیش نوشته بود که اشتباه کرده بود است البته دیگر این خبر زائد بود و او اکنون همه چیز برایش روشن شده بود و آن مردک افسر را به خاطر می این موضوع برای همیشه تمام شد. چند سال بعد فهمید که این باعث هم که دست تقدیر او را به شهر ته کشانیده بود، پنج سال تمام در آنجا به فعالیت مشغول بوده است. ولی به مدت دراز و غیرعادی این پیوستگی میاندیشید و فکر می کرد که لابد دیگر ناتالیا وسیلیفنا به سیار فرسوده شده است و کم کم دارد پابند می شود و در فکرش. همینها را توجیه می کرد تقریبا یک ساعت همانطور روی تخت خوابش نشسته بود به خود باز آمد زنگ زد تا ماورا برایش قهوه بیاورد با را آشامید و درست ساعت یازده برای پیدا کردن هتل پوکروفسکی به جانب پوکروف روان شد احساس عجیبی که امروز صبح درباره هتل پوکروفسکی به او دست داده بود اکنون کاملا واضح و مشخص می شد. در میان همه افکارش از طرزی که شب گذشته از پاول پاولویچ پذیرایی کرده بود چیزی سردر نمی آورد و حالا می خواست آن را روشن کند. با خودش می گفت جلوه اشباه در شب گذشته قضیه کلون در همه بر حسب تصادف مدیون مستی پاول پاولویچ بوده است و شاید هم علت دیگری در میان باشد. اما درست نمیدانست حالا برای چه از نو می تا رشته پیوند را با این شوهر سابق برقرار کند در صورتی که همه چیز خود به خود و به طور عادی پایان یافته بود ولی چیزی او را میکشانید و در میان همه اینها یک تثر بسیار عجیب خود نمایی می کرد و درست همین بود که او را میکشانید.